امام صادق علیه السلام فرمودن پله اول علم غروره پله دوم علم اعتراف به نادانیست پله سوم علم تحییره پله اول تازه یه مقدار فهمیدن آقا دیگه و چه دوری برمیداره ما مدرک دکترا گرفتیم قابیم که مدرک توش میذارم به دیوار و اتاقم میزنم باید منبت اطراف قاب چنین چنان باشه و حتما یه جایی بزنیم کسی از در میاد تو تیل کنیم این مسخر بازی ها رو. این ممن ها داره آره ما رو بیچاره میکنه. از همین جا شروع میشه. در صورت دیگر علم باشه آدم میفهمه که، همه اینا هیچه اما چرا علم این فهمو نمیاره درست نقطه مقابلش خلق درست نشده تا خلق درست نشه همین علم که علی علم و علم نوره اما اگر خلق خلق صحیح نباشد علی علم و اکبر نه هجاب تنها چون همین منم که بلدم. منم که میفهمم منم که این مسائل رو مینویسم منم که این مسائل رو میگم منم که این حرفا چیه و علی اینکه اصلا بنا بود در پیشگاه الهی ما متوجه به این حقیقت بشیم که در چه شرایطی هستیم و چی باید باشیم